فوض بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام نبینا نبی ناواله خدمت فدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر عرض می کنیم شاء الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله الله که از هر گونه بلا دور باشید تا آت و عبادت شما مقبول درگاه الهی انشاءالله که خداوند بهترین تقدیرات رو برای شما تقدیر فرماید ما بحثمون در قصر بود به نموزج قصر یک نگاهی بکنید تا من مبحث رو بخونم قصر رو به دو دسته قصر صفت در موصوف موصوف در صفت تقسیم کردیم بعد گفتیم هر قصری دو تا طرف داره مخصور و مخصوران علی بعد گفتیم که طرق قصری که اصطلاحی است و ما مورد بحث قرار میدیم نفی و استثناء انما و انما بل و لا و لاکن و تقدیم ما حق و تاخیر. بعد گفتیم هر قصری مطلق چه قصری صفت در مصف چه موصوف در صفت به دو دسته تقسیم میشه یک قصر حقیقی که گفتیم قصر حقیقی قصر چیزی در چیزی است در مقابل همه چیز و گفتیم این قصر حقیقی در قصر صفت در موصوف میاد و قابل تصور اما در قصر موصوف در صفت عرض کردیم که امکانش نیست قصد حقیقی دایتون باشه گفتیم به دو دلیل یک موصوفی که فقط یک صفت داشته باشه ما نمیشنستیم چون همچنین موصوفی نیست که ما احاطه داشته باشیم به همه صفاتش بگیم هی صفتی نداره جز این صفت و ثانیان گفتیم که موجب این میشه که ارتفاع نریزن بشه یعنی اگر موصوفی رو منحصر در یه صفتی کردیم اگر از اون سوال کنند صفت دیگری را دارد باید بگیم نه بگیم ضد اون صفت را دارد باز بگیم نه این به این دلیل نمیشه بعد گفتیم کتاب ما گفته که این لا یکاد و یوجه، نزدیک است که دیده نشه قصر موصوف در صفت خودین چرا گفته نزدیک است که دیده نشه اینکه میگید محاله گفتیم چو یه نوعی از قصر هست بهش میگن قصر حقیقی ادعایی که در واقع مجازی است این حقیقی ادعایی دیده شده یعنی شما موصوفی رو در یه صفتی قصر میکنید میگید هیچ صفت دیگهای نداره بعد میگن بابا صفات دیگه میگه من اینقدر این صفتش عمده است بزرگه اساسیه که من هیچ صفت دیگری را بگید ندیدم هیچ صفت دیگری را ندیدم و صفات دیگرش رو کل آدم حساب کرد بعد گفتیم که قصر اضافی داریم که نسبیه قصر چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاطب گفتیم هیم هم در قصر صفت در موصوف هم موصوف در صفت دیده میشه پنجاه و این میدان وسیعی است برای کتاب و شعرا بعد درس کردیم که این قصر اضافی که قصر چیزی در چیزی در مقابل چیز معینی بین متکلم و مخاطبه این به سه دسته تقسیم میشه یکی قصر قلب که جایی که شما اعتقاد مخاطب رو وارونه میکنید قصر افراد که گفتیم جایی است که شما اشتراک در اعتقاد مخاطب رو قطع میکنید نیمش رو میپذیرید نیمش رو رد میکنید و قصر تعیین گفتیم جایی که مخاطب در تعیین اینکه منحصر از چیزی در چیزی در مقابل چیز معین مونده مونده شما براش تعیین میکنید قصر تعیین است. و مثال هم برای شما کتاب مازد که گفت وقتی بگیم از شجاعه علی یون لا حسنون از شجاعه علی لا حسن پس اینجا ایجاد اینه که شجاعت مال علیه مال حسن آقاست کدومش بحثین بوده و دیگه ما کاری به شجاعت معدی کراب و رستم و غیره نداریم شجاعت بین علی و حسن بحث من و مخاطب وقتی من به مخاطب بگم اشجاعا علی و لا حسنٌ شجاعت رو منعصر در علی کردم در مقابل حسن آقا دیگه کاری به بقیه نده حالا اگه او معتقد بوده که حسن آقا شجاعه اگه او معتقد بوده که حسن آقا شجاعه میشه قصر قد اگه اون معتقد بوده هم علی شجاعه هم حسن من میگم علی شجاعه است و حسن نیست میشه غصر افراد اگه مونده بوده که شجاعت مال کدام یک از این دوتاست میشه غصره؟ نی خب این مبحث تمام شد باز دوباره کل درست من دوره کردم حالا نموزجی کتاب رو میخوایی بخانیم بوب. لازمه که توجه کنید نموزشون بین فیمایتی نوع القصر و بین کلا مل المقصور و المقصور علیه مشخص کن در آن که میاد نوع قصر رو و مشخص کن هر یک از مقصور و مقصورون علیه یک. قالت آن این نما یخش الله من عبادهی العلماء عل این ای نما طریق قصره و گفتیم طریق قصر وقتی این نما باشه ونچه که ما بعد میاد منحصر میشه در جزء آخر یعنی یخشال الله همین عبادهی منحصر میشه در العلماء خب یخش الله همین عبادهی صفته یعنی بیم داشتن از خدا در بین بندگان این منحصر شده در العلماء یعنی خدا باوران یعنی کسی که خدا رو باور داره خشیت از خداوند بیمه از خدا منحصره در کسیه که خدا شناسه چون خدا رو میشناسه پس بنابراین خشیت قلب او رو خواهد گرفت خدا رو باور دارد العلماء یعنی اونهایی که باور به خدا دارد یخش الله همه نوادهی متعلق به العلماء یه یعنی منحصر در العلماء قصر قصر صفت در خدا خداشناسی و ترسه از خدا منحصر در خدا باورانه این درسته دیگه؟ یعنی اگر یک کسی الان فرض بفرمایید که که بداند یقین داشته باشه کیست حالا مثال میزنم سیم لخت است و اگه انسان دست بزنه برق رو میگیره خب این نسبت به سیم لختی که ببیند نیم داره درس داره تقوا داره اما اگر کسی این رو نداند باورم نداشته باشه خبیش کسی که خدا را باور کند خشیت الهی در او منحصر است خب اینجا خشیت منحصر شده در علما در مقابل همه قصر قصر حقیقی است و از نوع استفاد در موفق فقط خشیت از خدا منحصر در علماست نه هیچ کس دیگر خدا باور است که خشیت در او منحصر است قصر صفت در مصوف از نوع حقیقی است طریقش این و قصر خشیت در علما در مقابل همه چیز دو دو نگاه کنید و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله رسول افا این مات او قتله این قلبتو مرا عقاب کن و ما محمدون الا رسولون طریق قصر نفی استثنااست محمد صلی الله علیه و آله و سلم منحصر شده در رسول بودن قصر موصوف در صفت و گفتیم موصوف موسوف در صفت نمیتونه حقیقی باشه مگر اون یه درصد حقیقی ادعایی که اینم این کتاب نگفت پس این قصر محمد در رسول قصر اضافی است چون قصر موصوف در صفت مت نظافی خب بعد میگه که قد خلت من قبله رسول محمد فقط رسول است زیرا قد خلت من قبله رسول در رسول الفلام داره جمعه تمامی رسولان قبل از او آمدند و از دنیا رفتند. زیرا تمامی رسولان قبل از او آمدند و از دنیا رفتند قد بعد میگه افه این همزه همزه استفام و فا بای نتیجه است بای تفریع تعلید. بنابراین آیا این ما تعاو قتله بنابراین آیا اگر بر از دنیا بره یا به شهادت برسه ما تعقاطلادنقللب تو مل عقابت بکن شما برمیگردید به گذشته خودتون بنابراین اگر یک روزی پیامبر از دنیا رفت یا به شهادت رسید آیا شما باز می گردید بر گذشته خودتون به جاهلیت خودتون خب یعنی چی؟ یعنی اسلام که به پیامبر متکی نیست. اسلام آیین الهی است. پیامبر مثل دیگر پیامبران به دیدار حق خواهد رفت، حالا یا به مرگ طبیعی یا به شهادت. آیا شایسته است شما دست از اسلام بردارید؟ اینجا یک شعن نزولی این آیه داره که اون شعن نزول را من میگویم بعد از اینکه اونو گفتم این آیه رو بحثش رو خواهیم کرد اونم اینه در یکی از جنگ دشمن حالا یا ترفندی به کار برد یا اشتباه کردند چون همه لباس ها شبیه هم بود جنگ گرد و خاک بلند می شد و در گرد و خاک جنگ کسی را دشمن به شهادت رسوند اشتباه کرد فکر کرد که رسول خدا را به شهادت رسوند به اشتباه داد زد قتل محمدون قتل محمد یا نه ترفند بود که اونها با این ترفند لشکر مسلمانان رو ناکار کنند که وقتی فریاد برآورند که قتل محمدون قتل محمدون ادعی با شنیدن اینکه پیامبر به شهادت رسید سست شد حالا علی حال دشمن این فریاد رو برآورد که قتل محمدون قتل محمدون بعد مسلمانان که داشتن میجنگیدند پا به فرار گذاشتند فرار کردند از میدان جنگ جز چند نفر و رسول خدا که سرسلسله این چند نفر که بعضا تا ده نفر گفته شده امیر بود اینها ایستادن جنگیدند. رسول خدا هم به عباس عموی خود گفت فریاد برآورد صدای بلند داشت که بگو که پیانبر زنده است برگردند او فریاد کشید مسلمانانی که فرار کرده بودند از میدان جنگ بازگشتند و جنگ پیروز شد بعد از اینکه جنگ پیروز شد این آیه نازل شد که و ما محمدون رسول قد خلت من قبله رسول افا این و قتله این قلب تو ملاعقا بکن میگه پیانبر فقط رسول است زیرا رسولان دیگری هم قبل از پیانبر ما بودن 124 هزار رسول آمدند و از دنیا رفتند بعد توبیخ میکنه میگه اگر یک زمانی پیانبر به رحمت خدا برود یا به شهادت برسد شما بازگشت به جاهلیت خودتون میکنید خب قصر قصر حقیقی نیست قصر اضافیه اون مخاطبینی رو مورد خطاب قرار داده که از میدان جنگ فرار کردند خب اونهایی که فرار کردن اون مخاطبین چی تو ذهنشون داشتن که در رفتن تو ذهنشون اینو داشتن که پیامبر رسول است چون اینو قبول داشتن مسلمان بودند اومده بودن به جهاد تو ذهنشون این بود که پیامبر رسول است و جاودانه هم هست یعنی تو ذهنشون این بود که محمدون رسولان و خالدون خالد یعنی جاودانه لا تو ذهنشون باور به اینکه پیامبر روزی از دنیا خواهد رفت رو نداشتن تو ذهنشون این بوده ولی اگر این نبود که فرار نمیکردن. تو ذهنشون این بوده این پیامبر پیامبر خدا رسول خدا و جاودانه است مرگ سراغش نمیاد بعد خدا میگه که پیامبر رسول هست اما جاودانه نیست زیرا رسولان دیگری زیادی قبل از او بودند از دنیا رفتند بنابراین شما اگر رسول خدا از دنیا برود یا به شهادت برسه قصدتون مینه که به جاهلیت بازگردید قصر میشه قصر اضافی با این توضیحی که دادم خدمت شما اولا قصر موصوف در صفت نوعش اضافی طریقش نفی و استثناست و محمد منحصره در رسول بودن شده در مقابل خالد بودن جافتنه بودن که با توضیحی که حالا کتاب ما نگفته که این قصر قصر اضافیه است چه نوعه قلب افراد یا بگید تعینه شما کدوم این رو احساس میکنید هست با این توضیحی که من دادم کاملا درست. قصر قصر افراده یعنی مخاطبین معتقد به این بودند که او هم رسول است و هم جاودانه است خداوند تعالی میفرماید رسول هست اما جاودانه نیست زیرا رسولان زیادی قبل از او آمدند و از دنیا رفتند بنابراین آیا توبیخشون میکنه بنابراین آیا اگر پیامبر روزی از دنیا بره یا به شهادت برسه شما به جاهلیت خود برمیگردید به عقب خود برمیگردید خب برم بریم سر سومی میگه قال لبیدن آقای لبید ابن ربیعه از جاهلی گفته صاحب معلقه مل مرعو الا کل هلال و یوافی تمام شهر سمیق میگه مل مرعو آل یعنی انسان میگه نیست این انسان مگر مثل ماه بودن مثل هلال بودن این انسان منحصر است در مثل هلال بودن این انسان جنس که من و شما باشیم منحصر است در مثل هلال بودن الا کل هلال یعنی الا ثابت کل هلاله وضعی مثل هلال است و درخشش و ال خب بعد میگه یوافی تمام از شهر ثم یقیب این هلال زیرا این هلال یک ماه تمام پیداش میشه ثم یقیب پر میکنه تمام ماه رو ثم یقیب ولی پر کردنش چطوره از یک هلال باری که در حد چند ثانیه تا یک دقیقه که دیده بشه لال اول ماه شروع میشه بعد ماه دوم بزرگتر ماه سوم بیشتر تا میشه ماه سیزده و چهارده و پونزده که یه هلال و قرص کامله مخصوصا ماه چهارده بعدره بعد دوباره شروع میشه کوچیک کچیک کوچیک کوچیک کوچیک میشه تا تمام میشه این ملمر و الله کل حلال و زویهی تشبیه و تشبیهشان انشاءالله فهمیدید تشبیه تمثیلیه یعنی هیئت انسان که به دنیا میاد یک کسیس که مگسم نمیتونه از خودش دور کنه بعد راشد می‌کنه 2 ساله، پنج ساله، ده ساله، 15 ساله، 18 ساله، 20 ساله، یه جوان الان دیگه 500 کیلو بار بلند می‌کنه، پهلوانی شد. بعد میاد میرسه به سن 30، 32، 35، 40 بعد شروع میکنه به عفول کردن. هی عفول، عفول، عفول، عفول تا میرسه به سن پیری، جوری میشه که دیگه آخرها آشق هم دستش نمیتونه بگیره بعد هم از دنیا میره میگه عین هلاله درست نیست از ضعف میاد به اوج قدرت بعد از اوج قدرت دوباره بر میگرده به ضعف و از بین میره میگه انسان مثل اینه درست شد این تشبیه تشبیه تمثیلیه تشبیه هیئت حیعت به هیئته و ما این رو با هم خونده بودیم تشبیه تمثیلی تشبیه هیئت حالا اینکه انسان این چنین است ضعف دارد و قوت دارد و سپس ضعف این مل مرء الا كل یعنی این نیست که انسان همیشه قوی باشه زعف داره قوت هم داره این رو قصرش قصر چیه؟ قصر موصوف در صفت مرع منحصر شده در مثل حلال بودن یعنی در قوت و زن قصر قصر اضافیه طریقش نفی و استثناعه مرع منحصر شده در کونه کلهلا و چون این شاعر لبید قصدش تو این شعر مخاطب خاصی نیست و داره مخاطب نوعی رو مورد خطاب قرار میده باید بگیم قصر قصر اضافی از نوع تعیینه یعنی فرض بر بوده که مخاطب مونده بوده تو این که آیا انسان منحصر در ضعفه یا انسان منحصر در قوت محضه یا انسان منحصر در قوت و ضعف با همه آمیختهای از این هست؟ داره چیکار میکنه؟ تعیین میکنه. داره تعیین میکنه که آمیخته ای از اینهاست. حواست باشه. انسان همیشه قوی نیست. خب مل مرء الا کلهلال و ذوعی یوافی تمام شهر ثم یقیب چهار داریم تکرار کل درس خودمون رو همه رو میکنیم ها قال ابن رومی في المده آقای ابن رومی در مده گفته این آقای ابن رومی اگه یادتون باشه میخوادیم شاعر تشبیه خیلی تشبیهات و ازش تو بحث بیان با هم خوندیم در مدح کسی چنین گفت اموالهو این رقاب ناس من مننن منن جمع مننته یعنی عطا رقابم جمع است یعنی گردن لاخل الخزائن خزائن جمع خزانه است یعنی صندوق جاهایی که پادشاهان درش درهم و دینار و انوال قیمتی رو نگه می داشتند خزانه دولتی حالا میگن خزانه با این که مرکزی آه؟ جمعش باشه خزای لافل خزای من عین و من نشبی این مسکوکات تلا نقره. درهم و دینار میشه عین نشب انوال دیگه است اموال دیگه مثل اسناد مثلا فرض کنید که مغازه ها خانه ها فرض کن سنگ های قیمتی در و یاقوت و زبرجد و الماس و اینجور چیزه اموالی که غیر از درهم و دینار پول نقد ماشه میشه نشد معتقد بودن شعرها اینطور میگن اینم درسته که اگر کسی به چی، کسی چیزی میده شعر هم ما تو این زمینه خوندیم مثل اینه که یک توقی رو به گردن اون میندازه که گذاشت عطا کرد به او عین اینه, اینه که او رو وامدار خودش کرده مثل یک توقی به گردن اوست هم این رو خونده بودیم و میگه اموالهو اموال این شخص دارایی این شخص فی رقاب ناس همش در گردن مردم یعنی این هرچه دارد کرم کرده و مثل توق به گردن مردمانه من مننن من بیانی است از عطایای او که بیان باشد از عطایای او یعنی آنچه در گردن مردمه که انوال اوست چیه میگه عطایای ای از منتهاییست عطایه است که در گردن مردم پس اموال این همش پیش مردمه اتایا و الطاف اوست و پیش مردمه انگار که در گردن اونه هست لاف اموال او در خزانه ها نیست صندوق ها نیست مثل دیگران که اموالشون رو تو صندوق میزنن درشو قفل میکنن خزانه ها نگه افوان برش میزنن نه این اموالش همش در گردن مردمه در خزانه ها باشد از چی؟ میگه در خزانه ها باشد از طلا و نقله درهم و دینار و از اموال غیر درهم و دینار یعنی نقد و غیر نقد نقدش میشه درهم و دینار این غیر نقدش اموال غیر نقد مثل بگید نشب اموال غیر نقده مثل سنگ های قیمتی سند های کذا و اموال اقصان خوب داشته مت میکرده اموال او رو منحصر کرده در دلگردن مردم بودن نه در خزانه بودن قصر موصوف در صفت و قصر موصوف در صفت دوست شد حقیقی نیست اینو گفتیم اضافیه قصر موصوف در صفت حقیقی نیست اضافیه منحصر کرده اموال رو در نزد مردم بودن در مقابل در خزانه بودن یعنی در نزد مردم هست و در خزانه ها نیست طریقش هم لاست طریقش عطف با لاست که فل خزائن با فی هم آمده عطف شده به جای فی رقاب لاست خوب این درست چه نوع قصر اضافی از کدوم نوعشه؟ آیا قصر اضافی از نوع قلبه؟ یا افراد یا تعینه؟ اگه قلب باشه باید بگیم مخاطب فکر میکرده که این همه اموالش رو تو خزانه ها گذاشته درش بسته این میگه نبا با اینطوری فکر نکن مخاطب این اموالشو همه رو به مردم داده هیچی تو تو خزانه ها نیست میشه قصر قرب. اگر مخاطب فکر میکرده این اموالشو مقدارشو به مردم داده مقدارش هم تو خزانه هاش داره هم به مردم داده هم در خزانه ها داره این میگه نخر همه رو به مردم داده تو خزانه ها چیزی نیست میشه قصر افراد اگه مونده بوده نمیدونسته که این مثل پادشاهان دیگه آیا قصر در خزانه ها یعنی تو خزانه هاش چیزی داره ای نداره آیا به مردم چیزی داده نداره کدومشه چطوره یا هر دو هم به مردم داده هم تو خزانه ها و شاعر داره تعییم میکنه میگه ای مخاطبان بدانید آنچه چه او دارد در نزد مردم است همه رو کرم کرده ازط و کرم و هیچی در خزانه های خودش از پول نقد و غیر نقد بگید ندارد. خب کده اگر دقت در معنای شعر بکنیم که داشته مدح میکرده مدح با مدح با قصر تعیین سازگار درست شد قصر قلب باشه که مخاطب فکر میکنه این همه تو خزانهاش قایم کرد یا قصر افراد باشه مخاطب فکر کنه این کرم داره تو خزانه هاش هم قایم کرده. این در واقع مدح او یعنی مخاطب یا همچین فکری در مورد این پادشاه میکرده و این اومده قصر کرده. این دوتا توش مد صورت نمیگیره. یعنی مخاطب به نوعی بدبینی نسبت به این آقا داره. تا حدی میگه تو صورت اول میگه همه تو خزانه هاش گذاشته تو صورت دوم میگه پنجاد درصدش تو خزانه هاش گذاشته. و شاعر میگه نه همه رو داده به مردم اما توی صورت سوم مخاطب نوعی رو داره براش تعیین میکنه مخاطب هم میگه نمیدونیم این هم مثل دیگران پادشاه از کدوم نوعش هست میگه این از اوناییه که همه رو خیرات کرده و هیچی رو در پیش خودش نگه نداشته از نوع اضافی، از نوع تعییم خب این رو هم با هم دیدیم هاشیه پایین رو نگاه کنین از ذهب و الفضت و نشب المال یقول انهو ینفق و انوالهو فلمنن او اموالش رو در عطاها خیلات میکنه علتی یغلد و به ها رجال اون التافی که باهاش گردن مردان رو قلاده میکنه پر میکنه بلا یخ زن و و این اموال رو در خزائن خودش جمع ام. تمام شد این فهمید رو, رو نگاه کنید مخوام سوال کنم. چون بحث رو ثابت کردیم من میخوام سوال کنم شما هم خوب دقت کنیم هم شعر رو بفهمید هم متون نزمون و همین که دست سوالی من رو هم متوجه بشید جواب بدید باز آقای وقاله یعنی قال همین لبی در مدح گفته چی؟ قال ابن رومی در مدح گفته میگه که و ما عجبنا ما شگفت زده نشدیم تعجب نکردیم و این اسبحت تعجبنا تو عجبنا اگرچه تو ما را به تعجب انداختی یعنی اگرچه پار تو شگفت انگیز بود ولی ما شگفت زده نشدیم این و این این وصلی است یعنی و اگرچه اسبحت ها. یعنی سر تعجب اونا اگرچه تو ایجاب تعجب باعث تعجب ما شدی یعنی میتونستی باعث تعجب بشی ولی ما تعجب نکردی ما عجبنا انجتنی یعنی من انجتنی اسفه حرف ج قبل از ان نقیاسی این انجتنی منصوب به نزل خافزه برای ما عجبنا اون جمله و این جمله معترس است ما شگفت شگف زده نشدیم ان نچتنی از این که بچینیم ذهبا طلا من از زهبی از محل طلا. کسی بره توی خزانه دولت که همش مثلا پر از سکه تلاست آیا اگر از اونجا با چند که طلا بیاد بیرون و طلا از اونجا چیده باشه برداشته باشه کسی تعجب میکنه نه از باغ انگور مردم باید چه بچینند خوش انگور میگه ما از اینکه به باغی وارد شدیم که موضع طلا بود و چی دیم از اونجا طلا هیچ تعجب نکردیم اگرچه کار تو تعجب بود یعنی چی یعنی ما از اینکه اومده بودیم پیش تو با دست پر برمیگشتیم تعجب نکردیم ولی کار تو تعجب داشت چون مثلا به هر یکی از ما یک کیسه س... س... س... سکه طلا داده بودی هزار سکه توش هرکی میگفت میگفت به همه تو ایگه ازاد سکه داد بله تعجب بله او او او همه تحجب میگن دنگوش بوده هان کارتا داشت ولی ما تعجبی نکردیم چون ما پیش تو هایم خب باید طلا بگیریم نیگه و ما عجبنا و این اسبحت تعجبنا عجبنا ان نجتنی ذهبا من موضع زهبی ذهبا مفعول نجتنیه من موضع متعلق به نشت ما از محل طلا طلا در بیاریم از معدن طلا طلا بکشیم بیرون بچینیم جای تعجب برامون نداشت ولی کار تو تعجبی بود چون به هر کدوم ما مثلا یک کیسه هزار دینار طلا داد لاکن میگه ولی ما تعجب نکردیم ولی عجب ناله لعرفن عرف یعنی عطا کرم ولی زده شده بودیم به خاطر عطا و کرم تو عرفن که این صفتو داره لا نکاف اوهو لا نکاف اوهو یا یعنی نمیتونستیم پاسخشو بدیم تعجب کرده بودیم از عطا و کرمی که نمیتونستیم پاسخشو بدیم یعنی تو هزار دینار به ما داده بودی؟ ما این هزار دینار رو نمیتونستیم تشکرشو بکنیم با هر زبانی تشکر می کردیم جایی کمه تو رو نمیگرفت. چون تعجب داشت کسی چنین بده. تعجب کرده بودیم از عطای تو از عطایی که نمیتونستیم لا نکاف اوو و عرفه عفه. نمیتونستیم پاسخشو بدیم. اما و نستذید رو که نمیتونستیم پاسخشو بدیم و نستذی و و طلب زیاده میکردیم از تو از این عطا بیشتر میخواستیم اکثر علاجبی این اکثر العجب مفهول و مطلق عجب ناست ولی تعجب کردیم چه تعجب زیادی از چی تعجب کردیم از پرروی خودمون که تو به ما یه عطایی کرده بودیم ما نمیتونستیم پاسخ اون عطا تو بدیم نمیتونستیم تشکر اونو بکنیم تازه هی hey, ما طلب زیاده از تو میکردیم از اونتا تو یه هزار سکه طلا به ما داده بودی خود رو می کشتیم هم نبتوسیم تشکر ازش بکنیم هی hey, داشتیم اصرار میکردیم حالا یه سکه دیگم یه دیگه هم به ما بکنیم پس به اول گفتش که ما هیچ تعجب نکردیم از اینکه که ما از معدن طلا طلا بچینیم گرچه کار تو شگفتنگیز بود کسی انقدر عطا نمیکنه تو بیت دوم گفتش که ولی ما یه جا تعجب کردیم از پررویی خودمون از اینکه تو عطا کرده بودی به ما و ما نمیتونستیم همون رو هم پاسخ مثبت بهش بدیم ولی طلب رو از تو میکردیم ما اینجا شگفت زده شدیم چه زیاد اکثر العجز خب این معنایشه صاحب کتاب ما نگاه کنید میگه این قصر صفت در مصوفه قصر صفت در موصوفه میگه طریقش لاکنه نسلش هم میگه از نوع اضافیه داری این میگه بعد میگه عجبنا منحصر شده در لعورف انلان و گافو. یعنی شگفت زده شدن ما منحصر در عطاییه که نمیتونستیم پاسخشو بگیم آیا این حرف ایشون با توجه به اون بحث قصر در مورد لاکن که من برای شما گفتم درسته؟ درست نیست حالا مال ما که به خودمون اونطور که نوشته فارسی برای ما میاد نوشته را بد یا بعد خا منظور یعنی خیر بله درست نیست درست شو خب داریم کم کم که ما باید خوب بفهمیم درسته درست شد این قصر غلطه اینجا این اینجا برای استدراک به معنای ولی استدراک یعنی تعجب نکردیم از هیچی. ولی یه چیز تعجب کردیم اونم اینه درست به معنای لاکن استدراکه ولی از این تعجب داشتیم درست شد و ما چیزهایی که در مورد لاکن گفتیم گفتیم باید بعدش مفرد بیاد و اون مفرد خبر مبتدا محضوف باشه و گفتیم حرف عطف نیست و مباحث دیگه این اصلا با این لاکن که بعدش جمله عجب آمده است و اگر یادتون باشه در مورد لاکن گفتیم که درست شد در لاکن ما قصر میکنیم ما قبل لاکن و در ما بعدش در مقابل ما قبل اینجا هم عجبلا هم لغرفن بعد از لاکن از این حرفا نیست هیچ کدوم از اون میارهایی که ما گفتیم وجود نداره و ایشون این رو متاسفانه غلط مثال زده و اصلا این لاکن لاکن قصری نیست و بحثش هم غلط است و لکن لکن استدراکی است و هیچ بحثی ندارد خب این تمام شد یعنی موضوع موضوعی بود که فهمید بریم سر مثال بعد قال القطمش از ذبید آقای قطممش زبی گفته قتمش زبی کیه میگه شاعران جاهلیون من شعرا این حماسه شاعری است جاهلی از شاعرای حماسه توی بحث بیان یه بار گفتم وقتی میگن از شاعرای حماسه منظور یعنی شعر او در کتاب حماسه ابو تمام آورده شده یعنی عبو تمام تو گلچین شعر اون رو شعرش رو پذیرفته. و این نشون میده که شعرش قریزه درست شو. اون جاهلی و مشوارایل هماسه و القتمش خود قتمش اسمش بوده ولی توی لغت یعنی الجایر و از ظالمه خب میبین چی میگه میگه الله اشکو فقط به خدا شکایت میکنه الالله اشکو لا الان ناس لا الان ناس اننی به خدا شکایت میکنم چه چیزی رو؟ اینو اننی ارل ارزت ابقا اینکه من میبینم دنیا سر جاشه هست و اخلاعت از حبوب و حالا که دوستان اخلا جمع خلیده دوستان یکی یکی میروند. میگم می به خدا خدا یا این چه کاریه که دنیا هست به این قشنگی هم داره شب و روزش تکرار میشه ولی ما دوستانمون یکی یکی دارن میرن. این شکایت رو به خدا میکنم که چرا دنیا باید باشد و دوستان ما یکی یکی بروند. خود خب نگاه کنید نوع قصر اینجا چیه؟ قصر قصر صفت در موصوفه. شکایت کردن خودش اشکور و منحصر کرده در الالله. من به خدا شکایت میکنم یعنی چی؟ یعنی کاری به کار ناس ندارم لا الان ناس لا الان ناس یعنی فقط به خدا شکایت میکنم با مردم کاری ندارم به مردم شکایت نمیکنم گله و شکایت هم میبرم شو خدا ال الله. شکایت میکنم به خدا چرا؟ این انلی یعنی لعنلی برای اینکه من عرل عرض تبقا میبینم این دنیا رو در حالی که سر جاشه تبقا ول اخلاعه و میبینم دوستان خودم رفقای خودم رو تذهب و یکی یکی خب قصر صفت در موصوف درست شکایت منحصر شده در الله ذاتی باری تعالی نوعش ببینید تقدیم ماحق و تأخیره تقدیم ماحق و تأخیر یعنی شکایت کردن منحصر شده در ذات اقدس سیلا در مقابل مردم یعنی اگر مخاطب فکر میکرده که من به مردم شکایت میکنم با خدا کاری ندارم میشه قصر قلب اگه فکر میکرده هم به مردم شکایت میکنم هم به خدا میشه قصر افراد اگه مونده بوده که من شکایت خود رو به خدا عرض میکنم و بعد هم به مردم بیان میکنم کدومش هر دو تک, تک مونده بوده توش من تعیین میکنم چون به نظر میاد چون شعر است و مخاطب خاصی ندارد و در مرسیه هم گفته شده قصر تعین درست شد تقدیم ماحق و تخیر شکایت اشکو در لفظ جناد نوع قصر اصافی تمام شد خب دیدید که خیلی تمرین پربرکتی این تمرین دو رو نگاه کنید یعنی نموزج دو این رو از یک شعری از آقای فرزدق ورداشت و درست کرده و درستم هست تمرین خوبی به شما میده میگه این دوتا مثال رو نگاه کنید اگر ما باب غصر و بحث قصر رو بلد نباشیم این دوتا یک و دو علف و ب برای ما یه شکل میشه ولی اگر کاسر بلد باشیم میبینیم که خیلی فرق می‌کنه. اونجا یه شعری داره فرزدق میگه ان ما یداف و انا, انا او مثلی. اینا اش ازون درست کرده که ان ما یداف و انه احسابهم انا, احساب انا او مثلی. نفایل یدافه است او مثلی هم کرده به جای حالا اگر فهمیدیم اون شعر فرزده هم میگه می میگاه کنید این المخصور علیف الجملتین الاتیتین و الفرق بین الفرق بینهما فی فلمن یکش الف فرض کنید که اینطور میگه انما یدافع عن احسابکم علی از شرف شما احساب جن و یعنی عزت و شرف همانا دفاع میکند از عزت و شرف شما علی همانا دفاع میکند از عزت و شرف شما علی فقط علی این یکی اون دومی گفته انما علیون همانا علی دفاع می کند از عزت و شرفشون. شما estion ما این دوتار را یه جون این مثلا مسلا ترجمه کنیم همانا دفاع می کند از عزت و شرف شما علی دومیلا ترجمه کنیم همانا علی دفاع می کند از عزت و شرف شما خlo ظاهرا طرف می به این جفتش یککیه دیگه مثلا به قول قدیم میام اوم حسن چه هسن کچل چه کچل این دوتا یه چود شده هم دفاع میکنه از حسب شما شرف و ناموس شما علی همانا علی دفاع میکنه در ناموس و شرف شما ولی تا از زمین تواسه می نگاه کنید تو اولی قصرش چه نو قصریه؟ با این نماس هر بود. در اولی ما دفاع کردن از شرف و عزت و ناموس رو منحصر کردیم در علی یعنی قصر صفت در موصوفه یعنی این صفت دفاع کردن از عزت و شرف مال این موصوفه علی آقا مال کسی دیگه میزه. تو دومی اومدیم گفتیم که علی آقا دفاع میکنه از عزت و شرف شما علی رو منحصر کردیم در دفاع کردن و علی آقا این رو داره که دفاع میکنه از ناموس و شرفشون خب. تو اولی که میگه دفاع کردن منحصر است در علی دفاع کردن از عزت و شرف منحصر در علی آغاست. یعنی کس دیگه همچین ارزه ای رو بگید نداره این عزت و شرف دفاع کردن از اون منحصر در علی آغاست. کس دیگه این عزت و شرف رو نمیتونه ازش دفعه چون این دیگه این فقط منحصر در علی آغاز حالا این منحصره در علی آغاز دفاع کردن مال علی آغاز کسی دیگه نمیتونه آیا علی میتونه کارهای دیگه هم برای مردم بکنه غیر از این دفاع کردن از عزت و شرف برد میتونه صد تا خدمت دیگه هم بکنه میتونه اونها رو آموزش هم بده میتونه اونها رو همدردی هم باشون بکنه میتونه اونها رو اطعام هم بکنه چون اثباتشه نفع موعدانه پس دو تا مزیدیت برای علی آقا میاره یکی اینکه دفاع از حسب و شرف منحصره در اون میشه نکسانه دیگه دوم علی هم میتونه کارهای دیگه بکنی چیزی در دومی میگه علی آقا منحصر در دفاع کردن از حسب و شرفه یعنی کار دیگه نمیخواد بکنه یا کل عدم کارهای دیگه و از طرف دیگه طبق قول دوم آیا طبق قول دوم آیا علی که منحصره در دفاع کردنه و عرضه دیگه نداره آیا دیگران میتونن همین دفاع کردن رو هم انجام بدن یا نه؟ بله میگه علی منحصر در دفاع کردنه علی فقط این کار بلده، کار دیگه بلد نیست این دلیل نمیشه دیگری هم همین کار رو نکن هر دوتا نقطه قوت اون مثال اول تو مثال دوم میشه ضعف پس اگر شاعری آمد در مدح علی گفت انما یدافو عن احسابکم علی اینو باید بهش جایزه درست به کار برده مد کرده شاعر دیگری گفت انما علیون یدافو عن احسابکم این مدح علی نکرده این اولا علی رو ارزشش منحصر در دفاع کرده دوم دیگران رو هم گفته که میتونم بیان این دفاع رو برای همینه که فرزدق تو شعر خودش میگه این نما او ان احساب انا او مثلی. الان میفهمی که چرا انا که فایلتر نگفته انما نما ادافعو ان احساب کن فعل رو یدافه آورده فاعل ازش جدا کرده برده زمیر منفصل آورده این نما یدافه و ان احساب کم انا او مثلی گفته دفاعی از نوامیس شما شرف و حیثیت شما منحصره در منه یا کسی که مثل من باشه که نیست مثل من منظورش بوده نیست من یا مثل من که مثل منی منظورش نیست دفاعی از شرف شما منحصر در منه یا مثل من یعنی کسی دیگه ای شما پیدا کنید آیا من کار دیگه هم ازم بر میاد بله حالا نگاه کنید خود ایشون هم رو توضیح میده میگه الف المقصور علی فی الجمله ال علی مقصور علی و زالکه قد علمت علم پایین. انل علی جز أن انل مقصور عليه می نمايكن و جوز ان معاخران وجودند، جوز معاخرس به طور وجود. المقصور عليه في الجمله الاولى علی کن. فل متكلم یا قول مخا به مخاطبین و خودش میگه علی یون وحده او، عليٰ به فقط یاستقلل به دفاع انصاب مستقل دست در دفاع کردن تک و تنهاس در دفاع کردن از نوامیس شما شرف شما و لاگشتر گمعهو فی ذالک احدون هیچ کسی هم با او شریک نیست دفاع از احساب مناظره در علی فقط بعد میگه از این اینطور برداشت میشه و منر جایز انتکون علیین اعمال و نخرو جایز هم هست علی اعمای دیگری کار خوب دیگری هم بس کنه برای اونا یخته مهم به غیر حاضر مدافع غیر از این دفاع کردن از شرف کارهای دیگری هم بکنه میشه که معالجت مرزاهم هم نیست که مریض های اونها رو معالجه کنه و مباسات فخر هم. و همراهی و همدلی کردن با فخر اما فل جملت ثانیه اما در جمله دوم فل مقصول علیه المدافع. مقصودان علیه مدافع است علی رو منحصر کردیم در دفاع کردن فعلی لا لایقون رو به سواها من یعنی علی دفاع انجام میده از احساب کار دیگه نمیکنه. کنه نه بعدم بعدم تازه اگه مفهوم گیری کنیم میشه علا من الجایز جای زنیشتره که معهوف دفاع سوا در همین دفاع کردنم میگه علی این کار ازش برمیاد فقط خب این دلیل نمیشه این جمله که دیگری این کار رو انجام نده ما میگیم علی این کار ازش برمیاد فقط و علی فقط این کاری میتونه بکنه یعنی کار دیگه نمیتونه بکنه خب این توش در نمیاد که دیگری هم نتونه این کار رو بکنه علا انده هومه در جای زنیشتره که معهوفت دفاع سوا فعنته ترامیه حالاتون میبینی انده جمله تل اولا ابلغ و من مده جمله اول دریغتر است مبالغامیستر است در مدح علی از دو جهت. اما اولا از جهت اول اینه فلانها ها توفید و انهو مستقلن به دفاع لا شریک له فی. این که این جمله افاده میکنه که علی مستقله در دفاع کردن از شرف اینهاست و هیچ شریک ندارد دوم و اما ثانیان فلعنها لا تنفی انللهو اعمال نخرو نف نمیکنه که علی کارهای خوب دیگری نکنه غیر المدافعت غیر از این دفاع کردن کارهای خوب دیگری نداشته باشه اینو نفیش بگید نمی کن. نفیش نمی من بحث قصر رو بحث قصر رو خیلی روش مایه گذاشتم، و خیلی بحث روش ایجاد کردم و بحثم سر این بود که شما این بحث رو خوب بفهمید این سه تا بحث آخر همینطوره هر کدومشون رو به تنهایی میگن که هر کدومشون رو به تنهایی میگن که باب علم معانی یعنی باب قصر علم معانی یعنی باب قصر بعضی گفتن علم معانی یعنی باب فصل و قصر بعضی گفتن علم معانی یعنی باب ایجاز و اتنام و سابق قصرش رو ما به طور کامل خوندیم هرچی هم که کتاب نقص داشت یا مطلب بود من بیان کردم برای شما اما بحث بعده درست شد؟ منظورتون توی این یدافو ان احساب هم اومدم ازش کذشتم این نما علیون یدافو قصر موسوف در صفته و قصر موسوف در صفت میشه اضافی چونو گفته بودیم خب گفتیم قصر موسوف در صفت ما به شکل حقیقی نداریم دیگه بریم سر بحث فصل و وصل بحث فصل و وصل من یه مقدمه سازی میکنم براتون اینا رو به عنوان یاد داشت یاد داشت میکنید که بحث فصل و وصل بحث, بحث بسیار مهم نیست بسیار مهم نیست و بسیار هم کارگوشا و سوده و با تا آخر عمرتونم بهش نیاز دارید اینه که خوب توجه کنید به این مقدمه هایی که من میگم چون وضعیش رو باید توی نه بلد باشید از بیرون بلد باشید این بحث رو بکن موضوع اول یک تبصیل که بیان نکن یک بحث فصل و وصل در جملات جاریست و با مفردات کاری ندور بحث فصل و وصل موضوعش جمله هاست ما فصل و وصل بین جملات رو بحث میکنیم فصل و وصل بین بگید جملات رو بحث میکنیم این مورد اول منظور از فصل دوم منظور از فصل جدا آمدن جملات از همه و عدم عطف اونها به هم جدا آمدن جملات از هم و عدم عطف اونها به هم و منظور از وصل عطف جمله به جمله دیگر به واسطه حرف عطف وابست فقط به واسطه حرف عطف وابست فقط حروف عطف داریم مثلا واو داریم فا داریم صو داریم شد اینا جمله ها رو عطف میکنن دیگه مثلا میگم دخل زیدن فسلم علینا یا میگم دخل زیدن سم سلم علیه یا میگم دخل زید و وسلم علیه این سومی مورد بحث ماست وصل از نوع وصل توش بحث میکنیم اما اولی و دومی رو بحث نمیکنیم چرا چرا این چرا رو خوب یاد بگیر چون در غیر واو از حروف عطف مثل فا و سمه، که جمله رو به جمله عطف کنه قرض در عطف کردن در خود معنای حرف عطف است یعنی خود حرف عطف معنا داره و غرض در خود همان حرف عطف است در معنای خود همان حرف عطف است مثلا فا یعنی ترتیب بدون مهلت، فا یعنی ترتیب پشت سرهم اومدن بدون مهلت، ثم یعنی ترتیب با محلت پشت سرهم اومدن با مهلت. یکیش بلا مهلت، یکیش مع مهلت، ترتیب بلا مهلت، ترتیب مع مهلت. خب حالا اگه زید اومده باشه به محض اینکه که رسیده سلام کرده ما با فا گفتیم دخل از ایدون فسلم علینا. فسلم علینا. اگر اومده یه مدت این بربر بر بر این ور ما رو نگاه کرده و بعد گفته سلام علیکم میگیم دخل از ثم سمه سلمه شما فارو بلدید، رو بلدید سمه بلدید کجا فار استفاده کنید کجا سمه رو استفاده کنید جای خودشه اطلو اما واف چی؟ واف هیچ معنای خودش نداره میگن واف برای مطلق اشتراک یا مطلق جمعه یعنی واف میاد ما قبل و ما رو به هم وصل میکنه فقط چسب منگنه است این دوتا رو به هم میچسبنه خودش معنای نداره فرای رو به هم وصل کن برای همین خاطر گوش برای همین خاطر واف سخته یعنی باید ما قبل و ما بعدش یه شرایطی داشته باشن که ما در نظر بگیریم که واف رو بهشون بیاریم این رو به هم بچسبونیم یا نه چون خودش معنا نداره واو و ثم خود معنای فاو و مقصوده ولی اینجا واو فقط میاد اینارو منگنه میکنه ما باید ببینیم این دوتا به هم دیگه میتونه چسب بشه و منگنه بشه یا نه چون واو برای مطلق جمعه برای اشتراک معطوف و معطوف علیک به هم دیگه است لذا واو رو مورد مطالعه قرار میدن تو بحث وصل و با بقیه حروف عاطفه کاری ندارد فقط واقع درست شد این مبحث هم داشته باش نکته بعدی بنویسید عطف جمله انشائیه به اخباریه عطف انشاء به اخبار و یا اخبار به انشا جایز نیست جایز نیست حالا با بافاعت کنید چه سممت چه واو نبید جمله خبری رو به انشایی انشایی رو به خبری عدو کنید جایز نیست عطف اخبار به انشا انشاء به اخبار مطلقا جایز نیست درست چون اینا دو ذاتشون با هم فرق میکن نمیشه با هم هم پس مثلا اگر شما دیدید اناعت کوسر الکوسر فسل رب که ونها اناعت ایناک الکوسر جمله خبری است فعل لربیکن هر جمله انشایی از فعل امر به هم عطش اون فا بهش میگن فای سببیت نتیجه تفریع تعلیل یکی از اینها رو میگن فای سببیت فای نتیجه فای تفریع فای تعلیل مثل حرف عطف نیست این فای نتیجه از فای سببیت یعنی بنابرید به همین علت که ما به تو سر دادیم تو هم نماز بخوان رو قربانی کن شب گذار باش زفافای عاطفه نیست چون عطف انشا به اخبار اخبار به انشا جایز نیست این را هم مطلب بعدی مطلب بعدی اینه عطفه جمله اسمیه به فعلیه یا فعلیه به اسمیه اشکالی ندارد ولی اگر همشکل باشند اولاست عطف اسمیه به فعلیه فعلیه به اسمیه اشکالی نداره ولی اگه همشکل باشن مثلا هر دو فعلیه باشن هر دو اسمیه باشن این بهتره. آقای شیخ بها میگه تشاکل الجملتین المتعاطفتین تشاکل الجملتین المتعاطفتین اولا من تخالفه ما اولا یعنی بهتر هست تخالفش. این رو هم فهمید الان نگاه کنید نگاه کنید مثلا سوره قل هو الله شما میگید قل هو الله بعد میگید الله و نه الان فصلی نگفته والله و سمن جمله به هم عطف نشود. قل هو الله و احدون الله حسامد بعد میگه لم یلد بازم عطف نشد اما بعد میگه لم یلد ولم یولد ولم یکن لهو کفو ونهد این ستا به هم عطف شده با واف این از موارد وصله. این بابه که باید به ما بگه چرا نکفته قل هو الله و والله حسامد ولم یلد آه. چرا نگفته لم یلد لم یولد بدون وال این بحث ماست درست شد پس عنوان رو فهمیدی یه نکته بگم اینم داشته باشید ببینید اگر ما بخواهیم بحث کنیم ابتدا به نظر شما بحث فصل رو بکنیم؟ یعنی فصل اصله یا وصل اصله؟ یعنی اون اصل فصل است یا وصل است؟ فصل درست است. چرا چون اصل در عالم هم فصله؟ در عالم هم فصله اصل اینه که همه چیز جدا از همند. پیوند آرز میشه بر اونها نیم مولانا میگه ما برای وصل کردن آمدیم چرا چون فصل هست دیگه همه جدان برای همین برای همین ابتدا در کتاب هایی که به عنوان کتاب بلاغی کتاب بلاغی هست اول فصل رو بحث میکنند بله اصل برای اینه که همه چیز از هم جو فصل اصل است و اصل پیوند است ما برای وصل کردن آمدیم یعنی چیزهایی که فصل است در دو و اصلشون جدا از همن. پس ابتدا اگر فصل رو بحث میکنند درست شد بعد وصل رو به این دلیل چرا چون عطف عارض میشه بر جمله عطف عارض میشه بر جملات اصل فصل است پس باب فصل و وصل موضوع بحث ماست و ابتدا هم باب فصل رو با هم میخونیم و پنج موضع برای فصل خواهیم گفت بعد بحث وصل رو میخونیم و چند موضع هم سه موزه، چهار موزه، حالا الان فعلا نمیخونیم. برای وصل میخوانیم. شد بعد از اینکه این, این مواضع فصل و وصل را خواندیم، موضوع تمام میشه. اون موقع شما هرچه از عبارات در مقابل شما باشد، میتونید ارتباط جمله ها رو با هم متوجه بشید. پس فهمیدید که این باب باب بسیار مهمی است پیوند جمله ها رو با هم دیگه به ما نشوند و ما تو اینجا عطف مفردات رو با همکاری نداریم مثلا بگه جا از زیدن و امرو نیمه حالا واو باشه، واو باشه، ما کاری بکارش نداریم اون عطف مفردات معناش جای خودش مثلا بحثش جداست ما اینجا بحث عطف جملات رو داریم و منظور از فصل جدا آمدن جملات و منظور از وصل پیوند اونها با واو است ضمن اینکه رئیس حروف عطف واوه اصل در حروف عطف رئیسشون واو مثل اینکه گفتیم اصل در حروف استفهام همزه است اصل در حروف عد هم با این مقدمه رو به عنوان یک و دو و سه می و خوب تو ذهنتون نگه میدارید قبل از جلسه آینده که میخوام، خوام انشالله مبحث رو بخونم کامل نگاهش می‌کنید. کنید متوجه شدید چون من خیلی ساده و لبان توضیح دادم بعد درس رو برای شما خواهم خوند الله این بحث رو خوب یاد بگیرید که بسیار راه گوش است التماس دعا داریم از همه شما انشاءالله که خداوند بهترین تقدیرات رو براتون داشته باشه و خداوند شرایط رو انشاءالله جوری بکنه که بتونیم حضوری در خدمتتون باشیم و انشاءالله مشکلات هرچی زودتر هد شد موفق و منصور باشید و السلام علیکم و رحمت الله و